مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتاد و چهارم فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز ظاهر است آثار و میوه رحمتش لیک کی داند جزو ماهیتش هیچ ماهیات اوصاف کمال کس نداند جز به آثار و مثال طفل ماهیت نداند تمس را جسک گویی هست چون حلوا تو را کهی بود ماهیت ذوق جماع مثل ماهیات حلوا ای متا لیک نسبت کرد از روی خوشی با تو آن عاقل چو تو کودک وشی تا بداند کودکان را از مثال گر نداند ماهیت یا عین حال پس اگر گویی بدانم دور نیست ور ندانم گفته کذب و زور نیست. گر کسی گوید که دانی نوه را آن رسول حق و نور روح را گر بگویی چون ندانم کان قمر هست از خورشید و مه مشهور تر کودکان خورد در کتاب ها، وان امامان جمله در مهراب ها، نام او خوانند در قرآن سره، قصه اش گویند از مازی فسه، راستگو دانیش تو از روی وصف، گرچه ماهیت نشد از نو کشف. ور بگوی من چه دانم نو را همچو اوی او را ای فتا مور لنگم من چه دانم فیل را پشه کی داند اسرافیل را این سخن هم راست است از روی آن که به ماهیت ندانیش ای فلان اجز از ادراک ماهیت امو حالت عامه بود مطلق مگو زان که ماهیات و سر سر آن پیش چشم کاملان باشد ایان در وجود از سر حق و ذات او دورتر از فهم و استبسار کو چونکه آن مخفی نماند از مهرمان ذات و وصف چیست کان ماند نهان عقل بحثی گوید این دور است و گاو، بیز تعویل محال کم شنو خطب بگوید مرتو را ایسست حال آنچه فوق حالت است آید محال واقعاتی که کنونت برگشود نیک اول هم مینمود می نمود چون رهانیدت زده زندان کرم ته را خود مکن حبس ستم جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت با اختلاف جهت نفی آن یک چیز و اثباتش رواست چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست مارمیت از رمیت از نسبت است نفی و اثبات است و هر دو مثبت است آن تو افگندی چو بردست تو بود تو نه که قوت حق نمود زور آدمزاد را حد بود مشت خاک اشکست لشکر کی شود موشت مشت تست و افگندن زماست زیندون نسبت نفی و اثباتش رواست یعرفون الانبیا از داده هم مثل مالا یشتب اولادهم هم همچو فرزندان خود دانندشان منکران با صد دلیل و سد نشان لیک از رشک و حسد پنهان کنند خیشتن را برندانم می میزنند پس چو یعرف گفت چون جای دگر گفت لا یعرف هم غیر فزر انهم تحت خبابی کامنون جز که از دانشان نداند زازمون هم به نسبت گیر این مفتوح را که بدانی و ندانی نوح را مسئله فنا و بقای درویش گفت قایل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست، هست از روی بقای ذات او، نیست گشته وصف او در وصف هو. چون زبانه شم پیش آفتاب، نیست باشد، هست باشد در حساب. هست باشد ذات او تا تو اگر برنهی پنبه بسوزد زن شرر نیست باشد روشنی ندهد ترا کرده باشد آفتاب او را فنا در دو صد من یک اوقیه خل چون درف گندی و دروی گشت حل نیست باشد تعم خل چون میچشی هست او قیف چون برکشی پیش شیر آهوی بیهوش شد هستیش در هست او رو شد این قیاس ناقصان بر کار رب جوشش عشق است نز ترک ادب نبز عاشق، به بر برمی جهد خیش را در کفه شه می نهد به عدبتر نیست کس زو در جهان با عدبتر نیست کس زو در نهان هم به نسبت دان وفاقی منتجب این دو زد با ادب یا به ادب به ادب باشد چو ظاهر بنگری که بود دعوی عشقش همسری. چون به باطن بنگری دعوی کجاست؟ او و دعوی پیش آن سلطان فناست. مات زیدون اگر فائل بود. لیک فائل نیست کو آتل بود. او زروی لفظ نهوی فائل است. ورنه او مفعول و موتش قاتل است فاعل چه کو چنان مقهور شد فاعلی ها جمله از وی دور شد قصه وکیل صدر جهان در بخارا بنده صدر جهان متهم شد گشت از صدرش نهان مدت ده سال سرگردان بگشت گه خراسان گه کوهستان گاه دشت از پس ده سال او از اشتیاق گشت به طاقت ز ایام فراق گفت تا به فرقتم زین پس نماند صبر کی داند خلاعت را نشاند از فراق این خاک ها شوره شود آب زرد و گنده و تیره شود باد جان افزا وخم گردد وبا آتش خاکستر گردد هبا باغ چون جنت شود دار المرز زرد و ریزان برگ او اندر هرز عقل در راک از فراق دوستان همچو تیرانداز انداز اشکست کمان دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است پیر از فرقت چنان لرزان شده است گر بگویم از فراق چون شرار تا قیامت یک بود از صد هزار پس ز شرح سوز او کم زن نفس رب سلم رب سلم گویو بس هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراق او بیاندیش آن زمان زانچه گشتی شاد بس بسکس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بار وای منه پیش از آن کو بچهد از وای تو بجه پیدا شدن روح القدس به صورت آدمی بر مریم به وقت برهنگی و غسل کردن و پناه گرفتن به حق تعالی همچو مریم گوی پیش از فوت ملک نقش را کل اوزو بر رحمان منک. دید مریم صورت بس جانفزا، جانفزای دل در خلا. پیش او بر راست از روی زمین چون مه و خورشید آن روح الامین. از زمین بر راست خوبه بین نقاب، آنچنان که از شرق رویت آفتاب. لرزه بر اعضای مریم افتاد، کو بره نبود و ترسید از فساد. صورتی که یوسف اردیدی آیان، دست از حیرت بریدی چون زنان، همچو گل پیشش برویدان زگل چون خیالی که برارد سرز دل گشت بی خود مریم و در بیخودی خودی گفت بجهم در پناه ایزدی. زن که عادت کرده بودان پاک جعب در حزیمت رخت بردن سوی غیب چون جهان را دید ملک بیقرار حازمانه ساخت زان حضرت حسار تا بگاه مرگ حسنه باشدش که نیابد خسم راه مقصدش از پناه حق حسار به ندید یوردگه نزدیک آن دز برگزید چون بدید آن غمزههای عقل سوز که از او می شد جگرها تیر دوز شاه و لشکر حلق شده خسروان هوش بی شده صد هزاران شاه مملوکش برق صد هزاران بدر را داده دق. زهره نیمر زهره را تا دم زند عقل کلش چون ببیند کم زند من چه گویم که مرا در دخت است دمگه هم را دمگه او سوخت است. دود آن نارم دلیلم من برو دور از آن شه باطلون ما عب برو خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نور آفتاب مستتیل سایه که بود؟ تا دلیل او بود این بس استش که زلیل او بود این جلالت در دلالت صادق است جمله ادراکات پس او سابق است جمله ادراکات بر خرهای لنگ او سوار باد پران پر چون خدن. گاگر غریزد کس نیابرد گرد شه ورگریزندو بگیرد پیش ره جمله ادراکات را آرام نه وقت میدان است وقت جام نی این یکی وهم چوباز میپرد باندگر چون تیر معبر بر میدرد واندگر چون کشتی با بادبان واندگر اندر تراجع هر زمان چون شکار می نمایتشان زدور جمله حمله می آن تویور چون که ناپیدا شود حیران شوند همچو جغدان سوی هر ویران شوند منتظر چشم به هم یک چشم باز تا که پیدا گردد آن سید بناز چون بماند دیر گویند از ملال سید بود آن خود عجب یا خود خیال مصلحت آن است تا یک ساعت قوت گیرند و زور از راحتی گر نبودی شب همه خلقان ز آز تن را سوختندی ز از هوس و از حرس سودندوختن هر کس دادی بدن را سوختن شب قدید آید چو گنج رحمت تا رهند از حرس خود یک ساعته چونکه که قبض آیادت ای راه رو آن صلاح توست آتش دل مشو زان که در خرجی در آن بست و گشاد خرج را دخل بباید زیعت دا. گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان زدی، منبتش را سوختی از بیخ و که دگر تازه نگشتی آن کهون. گر ترش روی آن دی مشفق است، صیف خندان است اما محرق است، چون که خب تو در وی بست بین. تازه باش و چین ما در جبین. کودکان خندان و دانایان ترش غم جگر را باشد و شادی زشش. چشم کودک همچو خر در آخر است. چشم عاقل در حساب آخر است او در آخر چرب می بیند علف وینز قصاب آخرش بیند تلف آن علف تلخ است که این قصاب داد بهر لحم ما ترازوی نهاد روز حکمت خور علف کن را خدا بیغرز داد است از محض عطا فهم نان کردی نه حکمت ای رهی زان چه حق گفتد کلومن من رزقه رزق حق حکمت بود در مرتبت کان گلوگیرت نباشد عاقبت این دهان بستی دهان باز شد کو خورنده لقمه های راز شد گرز شیر دیو تن را وابری در فتام او بس نیمت خوری ترک جوشش شرح کردم نیم خام از حکیم غزنوی بشنو تمام در الهی نامه گوید شرح این آن حکیم غیب و فخر العارفین غم و نان غم مخر زان که آقل غم خورد کودک شکر قند شادی میوه باغ غم است این فرح زخم است آن غم مرهم است غم چوبینی در کنارش کش به عشق از سر ربوه نظر کن در دمشق عاقل از انگور می بیند همه عاشق از معدوم شی بیند همه جنگ می کردند هم مالان پریر تو مکش تا من کشم هملش چو شیر زانکه که زان رنجش همی دیدند سود حمل را هر یک ز دیگر بود. مزد حق کو مزد آن بیمایه کو این دهت گنجید مزد و آن تسو گنج زری زر که چ خسپی زیر ریگ با تو باشد آن نباشد مرده پیش پیش آن جنازت می دود، مونس گور و غریبی می شود. بحر روز مرگ این دم مرده باش، تا شوی با عشق سرمد خاجتاش. صبر می بیند ز پرده اجتهاد، روی چونگلنار و زلفین مراد. غم چو آینه است پیش مجتهد کندرین زد می نماید روی زد بعد زد رنج آن زد دگر دهد یعنی گشاد و کر و فر این دو وصف از پنجه دستت ببین بعد قبض مشت بست آید یقین پنجر آگر قبض باشد دائما یا همه بست او بود چون مبتلا زیند و وصفش کار و مکسب منتظم چون پر مرغ این دو حالو را مهم چون که مریم مزترب شد یک زمان همچنان که بر زمین آن ماهیان گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقم بانگ بر وی نمودار کرم که امین حضرتم از من مرم از سرافرازان عزت سر مکش از چونین خوشمهرمان خود در مکش این همه گفت و زباله نور پاک از لبش می شد پیاپی بر سماک از وجودم می گریزی در ادم در ادم من شاهم و صاحب علم خود بن و بنگاه من در نیستیست یک سواره نقش من پیش ستیست مریم بنگار بنگر که نقش مشکلم هم حلالم هم خیال اندر دلم چون خیال در دلت آمد نشست هر کجا که می با تو است. جز خیال آریزی باطل کو بود چون صبح کاذب آفله من چون صبح صادقم از نور رب که نگردد گرد روزم هیچ شب هین مکن لاحول امران زادم که ز لاحول این طرف افتادم مرمرا اصل و غذا لاحول بود نور لاحول که پیش از قول بود تو همه گیری پناه از من به حق من نگاریده پناهم در سبق آن پناهم من که مخلص هات بوز تو عوز آری و من خود آن عوز آفت نبود بتر از ناشناخت تو بر یارو ندانی عشق باخت یار را اغیار پنداری همه شادی را نام بنهادی غمه این چونین نخل که لطف یار ماست چونکه ما دزدیم نخلش دار ماست. این مشکین که ظلف میر ماست چون که به این زنجیر ماست این چونین لطفه، چونیل می رود چون که چون خوم می شود خون همه گوید منابم هین مریز یوسفم گرگ از توم ای پرس تو نمیبینی که یار برد بار چون با او زد شدی گردت چمار لحم او و شحم او دیگر نشد او چنان بد جسک از منظر نشد